اوزو بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الحمد الحمدللہ رب العالمين و الله اللہ محمد و علی تاهرین صل محمد و علی می‌دونید که چون مشکلی پیش نمیاد. ولی یه سلامات بفرستیم و شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وام یازکریل مصنف خود مزیادت رجنه ما کان المشهور ان زیادته او حد نقصته تنبیهان الافساد الكلبیت في طرف زیادته لتخلفی في موازع جسیرتن لا تبتلو بزیادتهی سه ون کنیا الآخر خب بس ما در مورد اونجای هستیش که ما در مورد ارکان صحبت می کنیم. حالا سوال شما که فرمودید در مورد سجده ببینید ما ارکان رو شمردیم جلسه قبل حالا اینو توضیح بدم بعد واسه روزو بخونیم گفتیم که ارکان خمسه عبارتند از نیت، قیام، تحریمه، رکو و دو تا سجده با هم. دو تا سجده با هم یه اشکالی پیش اومد شهید سانی گفت که اگر دو سجده با هم روچ پس یکی شو انجام ندید دو سجده با هم رو تحویل ندادی که پس روچ مشکل دارد و در نچه باید باطل بشه در حال که هیچگی به بطلان به خاطر یک سجده فراموش شده نیست شهید اول اینو پاسخ داد گفت علتش اینه که روچ مصمای سجوده خب شهید سانی حق داره جواب بده. بگی آقای شهید اول ما داریم بر این فرض صحبت میکنیم و بحث میکنیم که روجونه سجده تنها معنی شما موقع شروع بحث گفتید روجونه هر دو سجده با همه حالا اشکالی پیش میاد میگی آقا روجونه مسمای سجوده. بله مسمای سجوده بگید اون اشکال برطرف میشه ولی از محله بحث ما خارج شدید. پس اتاق گفت‌وگوی ما رفتید اتاق دیگه. میگی بحث دیگه شنو باید ببینیم آیا مسمى سجود هست یا نه یا مطلب دیگری است این محل بحث ما چه خود شما هم تو بعضی موارد این رو گفتید قائل به این شدید خب سوالتون همینجاش بود چیش بود سوال این خب بعد بعد میگه موافقت این امام معن خب شهید اول خودش موافقت دارد خود شهید اول موافقت تهی روش بنویسید در ذکر شهید اول موافق است که موسمای سجود و اینا چیه؟ دوتا سجدتین با هم روچون هستن خیلی خوب وقتی خودت همون رو میگی چطور در پاسخه به اشکال میگی نه موسمای سجود مبنات بلاخره کدومه؟ اونه یا اینه؟ بله داره. نه در موافقتی تو همون ذکره آخه جوابش هم تو ذکره بود دیگه خودت تو ذکره ها میگی دوتاش با هم بعد همونجا میگی نه موسمای سجود به درده میخورد خله خب ما الان توی اون ارکان گفتیم اگر یکی از اون سجدته فراموش بشه ایرادی نداره صحوان اگر باشد عمدن باشه که مشکل داره حالا میکی ولم یزکر المسنف و خجم زیادت رجن مکان المشهوره انز زیادته علا حد نقیسته آقا اگر روکنه را صحوان فراموشن نمیدونم یادت بره نسیانن به هر دلیلی روکنه رو انجام ندید نقیصه ایجاد شود نماز باطله اینو رو گوشهی کجا گفت؟ کجا گفت این عبارتش کجاست؟ آقای باشتنه کجا گفت این اون رو؟ دمیده، او خب، کلا شروع شده. یه بار دیگه صلوات می‌فرستیم. اونایی که متوجه نشدن کلاس شروع شده، دوباره شروع بشه. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. گوشی چیز دیگه، نرو بذار کنار. بیا تو بحث. شهید اول گفت: اگر رکن حتی سهوً هم چم بشه باطل می‌شود. شهید ثانی میگه خب اینو گفت خدا پدرش رو بیامرزه. حالا چرا ناهی زیادت را نگفت؟ چه اگر روچن سهون اضافه بشه هم باطل میشه اینو چرا نگفت؟ حلتش اینه چون در ناهی زیادت کبرای کلی نداریم ما یه مطلب کلی نداریم چون در بعضی موارد روچن رو سهون اضافه کنید نماز باطل نمیشه ببینیم لم یسکر المسندف و حکم زیادت روچنه اون بالا هم حکم چم شدن رطن رو گفته بود که ترچ احد الارکان معن ببین ولو سهون بالا گفت حالا چرا زیادت رو نگفت معکاون المشهوره ان زیادته او علی حد نقیسته با اینکه مشهور اینه که زیادته روشن هم مثل نقصان ركن یعنی صحویش باطل میکنه نگفت تنبیهان این محفظون له، علت نگفتنش و عدم زشدش اینه تنبیهان علا فساد کلیگه حد نقیصه حد نقیصه یعنی اینم در حد همون نقیصه است یعنی همونطور که نقیصه باطل میکند زیادت هم در همون حد باطل میکنه پس چرا نگفتین رو هن بی هن فساد کلیه فی طرف زیاده چون کلیت در طرف زیادت نداریم یعنی مطلب درسته ها مشکل نداره اگر صحوان زیاد شد باطل خواهد شد نه ندر همه همه موارد تو بعضی موارد میبینید زیادت هست در رو چون صحوان البته ولی باطل نمیشه حالا الان من خدمتتون عرض می‌کنم که حتی تو بضیاش عمدن هم هست. الان موارد چه مشمریم؟ طرف عمدن روچن را اضافه خواهد کرد ولی نماز باطل نخواهد شد. ببینیم. له تخلف تخلف هی تخلف این طرف زیادت بگیریم. فی مواضع کثیرتن البته این موازه کسیده که میگیم کبقه نظر مشهور و غیر مشهور یکی دو تا غیر مشهور هم داریم یعنی اگر نظر غیر مشهور رو بگیرید زیادت و رجن باعث بطران نخواهد شد لا تبطلو به هی صحوان با زیادت صحویش باطل نمیشه روی این صحوان هست کردم تو بعضی مواردش عمدی هم هست چند نیه روی چند نیت بنویسید یک تیتریه امجان میخواد بزنید چنالش بزنید موارد زیادت رخن چه باعث بطلان نمی شود موارد زیادت رخن البته سهواً حالا من از کردم هم هست حتی چه باعث بطلان نماز نمی شود چند نیه شماره یک پایینش بیاید وحیه معد تکبیر شماره دو بعدش خط پایینش او سلمه این سه و القیام انجل ناهو این هم چهار خط بودم کمتر از یه خط و رکوع اینم پنج پایینش و سجود ده فی ما لوزاده اونم شیش و زیادت جمعه تل اینم هفت پایینش او اتم المصافر و ناسیان اینم هشت چی؟ و بتحريم يصير يستطيع تقريبا 3 ما ازو داره و قطعا خالص نه نه اون تحريم اطف برون نيت غير نيت و تحريم اون رو همه اونجاش مورد جدید نیست. خیلی خوب آقا 8 تا مورد الان شما خواهیم گفت تو اینها ها زیادت ركن باعث باطل شدن نماز نمیشه صحویش حالا من وعده دادم عمدیشو ببینید عمدی هم داریم تو اینا یا همش صحوی چند نیه اولین جایی که روچ اضافه میکنید ولی بطلان نمیاد یکیش نیت اولا به من بگیرونم نیت روچ هست یا نه بله. چه گفت همونجا گفتی که ارکان خمسه و لاوصحون و هیه نیه اولیش نیته دیگه حالا یه لحظه ما نگاه کنید. اگر شخصی نیت رو در بین نماز هی تکرار کنه اضافه کنه نیت رو اگر بین نماز این رکوع رو اضافه کنه از خودش باطل میشه یا نه رکوع رو اضافه پی قولا وسط قرائت این یه رکوع انجام بدیم برگردم بقی قدر برگرد. میشه باطل میشه دیگه سهو نشه باطل رو. اما اگر وسط نماز هی نیت رو تکرار کنه بگه چهار رکعت نماز ظهر حاضرالم کنه اولو ثانی بعد یه چند لبسه بعد چهارکت نماز ظهر رو میخونم باربطه. هینیت تو تکرار کنه. نمازش باطل میشه؟ نه. در حالی که چیه؟ زیاده طور؟ نه. تازه. صحبه بود یا عمده بود؟ عمده بود. باطل؟ نمید. بخاطر هم گفتم. بعضی مواردش عمدی شهید سانی داشت تذکر میدار. بگفت اینجا عمدیه. چنیه فا این زیادتها؟ مؤكدتون نه تنها مقتله تون نیست بلکه خوب هم هست مؤكدتون لنیابت الاستدامه الحكمیت آنها تخفیفن این لنیابت رو متطلب مؤكد نگیرید ها ترجید کننده این را اینجوری معنی نکنید اون علت لنیابه علت حالا چرا مؤكد است علتش اینه شما تو بحث نیت چندین بار خوندید این را. ما در نماز گفتیم طبقه این حساب کتاب قدما نیت یعنی این که شما وقتی میخوایی شروع کنی نماز رو بگی الله و اچبر تحریمه رو بگی آن لحظه اولش باید مقترنه به نیت باشه یعنی شما در اون لحظه گفتن الله و باید تو ذهنت بیاد که نماز ظهر چهار رو رو میخونن قربتان الله حالا در ادامه این نیت رو باید ما چیکار کنیم؟ لحظه به لحظه داشته باشیم تا آخر نماز السلام علیکم و حمد الله و برکات. تا آن لحظه باید همین نیت تو زهن ما اینجوری مبرز باشد ولی این چون از دست ما بر نمیاد نمیشه تو نگه داریم. ما کلی کار داریم باید برای اونا تو نماز فکر کنیم گرگسته گم کردیم باید تو نماز پیداش کنیم برنامه ریزی چیزایی دیگه لذا <تصح> <تصح> تا الله و اکبر نماز رو گفتیم بسم الله ببینی ذهن رفت جای دیگه اون خطور ذهنی میره خب شاره در اینجا سخت گرفته یا آسون گرفته آسون, آسون, آسون. گرفته گفتیم نداره اون نیت در ذهن شما الان گم شد ولی حجمن هست به صورت برجسته و مبرز نیست ولی در دلت هست حکمن هست لذا گفتن استدامی حکمی کافیه لازم نیست استدامی حقیقی باشه حالا که اینجوری شد استدامی حکمی کافی هست و من تو دلم هستم این نیفت رو دارم اگر من در بعضی لحظات نماز همین رو بیام دوباره برجستش کنم اون استدامی حکمی که ته دلم بود اون هست یک نیت برجستم از همون دوباره به ذهنم خطور میدم این خطور دادن نیت به صورت حقیقی به ذهن با اینکه اون حکمش تو دلم هست این چه کاره میشه نسبت به اون موعقد میشه دیگه یعنی اون چیزی که هست رو دوباره برجسته میکنم میشه موعقد خیلی خوب حالا این نیتی که تو ذهنم آوردم شما به من بگید مبتل یا موعکده مؤکده. نه نمبتل پس رجن اضافه شد در حالی که مبتل نشد اصلا من از کردن عمدی هم هست سحویش که هیچ. اگر سحویش هم بود که باز بهتر بالاخره بینیت محکد میشه محکد میشه ببینید حالا چندیه عبارت همه جزه هاشو برای تون توضیح دارم چندیه فَإِنَّ زِيَادَتَهَا مُحکدَتَونَ ویربول بزاید اونجا. چرا معکده آجان؟ لنیابتل استدامتل حکمیته به جای خود نیت. استدامه حکمیه به جای استدامه حقیقیه ب... یعنی به جای خود نیت نایب شده. هست دیگه. چرا این استدامه حکمیه رو پذیرفتن؟ تخفیف؟ چون سخت بود نمیشون. خیلی خوب. روی این حساب پس معکد اون نیت هست فعضا حسلت کان اولا از استدامه حکمیه بهتره دیگه اینکه شما هم اول نماز یادت بره کلن تا آخرش فقط استدامه حکمی باشه اینچه خیلی جالب نیست یه اولویتی در این برجست سازی نیت هست اینم هم همینا هم میگه کان اولا اولی مورد از مواردی چه روشنه اضافه شد و باطل نشد تمام اگه حرفی هست بزنید چون نیابتون نیابت نایب شدنه بله نایب شدن این نیت جدیده جای نایب شدنه نه نایب شدن استدامه حکمیه آنها به جای اصل نیت یعنی استدامه حقیقیه نیتی که جدیدتون که نیتی جدید میاد این نیتی که به استراضی موکد است یا اون چه استدامی حکمیه نه اون نیتهایی که من هی میارم تو ذهنم برجسته میکنم اون خود نیت حقیقی است این اصلا این باید میبود اون حکمیه نايبه نه این نیت که به ذهنم میارم این اصله این محکده؟ محکده؟ داریم. وقتی که این, این داریم؟ وقتی استدامه حکمیه رو قبول دارن میگن همون کافیه من میگم آقا نه من برای این چه بشه خود نیت حقیقش هم میارم خب تحکید شد دیگه اون حکمیه تحکید شد محکدتون یا به خاطر این اون نایب رو داریم دیگه حالا که نایب رو داریم این محکد میشه حالا محکده چی؟ شاید این رو بگیم روشن بشی برای این محکده است همون نیت حکمی را استدامه حکمی را خب قبول کردید الان یه رچن اضافه شد امدن ولی باطل نشود. این بنابرای نظر قدما هست و الله طبق نظر الان ما چند تا نیت داریم کلا یه دونه نیت بیشتر نداریم نیت تکشار نمیشه که چطور میشه نیت رو تکرار کرد شما یه نیت داری هی hey, اونو به ذهنت میاری یادت میره دوباره به ذهنت میاری دوباره از ذهنت میره به ذهنت میاری همون یه نیته اینا دوتا نیسته. نیست زمین که این کنم اینا روایت موایت هم نداره ها ارکان نماز 5 تاست میدونی اصلا این روایت وقت... این... وقتی میگم روایت نداره منظورم اینه که این چیزی نیست که احمه بهش پرداخته باشند. این فوقها بهش پرداختن چرا؟ چون احمه فرمودن که مثلا رکوب صحوان یادت بره باطله اما قراعت سهو بن یادت بره باطل نیست. فوها نما کردن گفتن خب ته هم واجبه، هم واجبه. ولی اون سهونش باطل نمیکنه این سهون فراموش بشه باطل میکنه. پس فرق هست بذار اینا رو اسمش خصوصا روج، اونا رو گذاشتن غیر رو چون واجبات غیر روش. فوها ها اینو رو. فوها اینو کارشون برد نیست خوبه. اینو در آوردم. ولی خود کلمه روق رو این چیزها نیست. خب دومین مورد زهیه ما تجویر هیارو رو به نیت بزنید یعنی نیت همراه با تکبیر این چند تا روشنالان هیه معد تجبیر چند تا روشنالان دو, دو تا روشنالان اضافه خواهیم کرد نماز هیچ آخ نمیگه هیچ چیش نمیشه و هیه معد تکبیر چه هست در نماز من یه نیت و یه تکبیر در نمازم اضافی دارم ولی باته نمیشه میگه فیماله و طبعی محتاطه الحاجت و الهه وقتی نیاز به احتیاط برای محتاط تبیان پیدا کرد منظور اینه ده لحظه من نگاه کنید شما نماز چهار رکتی دارید میخونید زهر یا اصر یا اشار بعد چک میکنید بین سه و چهار میگید الان سهم سه یا چهارم بنارو بر چی میذارید؟ بر چهار میذارید میگید حتما چهارم بعد نماز رو تمام میکنید ولی چون احتمال داره سه بوده باشه یاد. یه نماز احتیاط میخونید. با میشید. نماز احتیاط رو چه جوری میخونید بگید؟ خب یه رکعت ایستاده اجزاشو بگید. اجزاشو بگید. عجزاشو بگید. نیت می‌کنید. انیات میخونید الله اکبر میگید تکبیر، یه رکعت میخونید بعد تشهد و سلام. درسته؟ اگر بعدش یه دفعه یادم میاد که ا من رکعت سومم بود در واقع واقعا سه رکت بود خدا رحم کرد اون نماز احتیاطه قشن چسبید بهش شد چهار رکت خیلی خوب الان شما یه نماز چهار رکتی خوندی، نماز زهر چهار رکتی ولی چند بار توش تکبیر اطالا احرام گفتید دو بار چند بار نیت کردید طبعا نیت قدما دو بار پس نیت و تکبیر اطالا احرام در این یه دونه نماز زهر شما تکرار شد اضافه شد و باطل نشد. چون ناموس درستن پس این رو این حسابا بود که شهید اول حکم زیادت الروج رو نگفت فقط ترچت صحویش رو گفت دیگه از جانب کلیتش چون درست نبود نمیتونه بگه آقا آن چیزی است که چند شدن صحویش باطل میکنه زیاد شدن صحویش هم باطل میکنه اینو نگفت دیگه پس اصل بس حواستون باشه ما دریم اون مطلب رو اینجا براتون میشونیم به کلیتش یعنی زیادت روشن مقتل نماز هست صحبم ولی کلیت نداره تو مثلا 99 درصد موارد باطل میکنه تو 95 درصد 90 درصد باطل میکنه تو این چند مورد باطل نمیکنه پس کلیت نداره حالا شما الان میتونید برید رو جانب نقصان هم چه شهید اول گفت و شهید ثانی هم تاییدش کرد میتونید روون هم فکر کنید بگید آقا اگه اینجوریه پس ما هم بعضی مواردی رو پیدا میکنیم که نقصان رجن هم باطل نکنه میشه پیدا کرد؟ حالا اینو یه بحثش آره میشه همین عباب مثلا چطور؟ از هم نماز مسلمی رو از هم با قیام حالا ممکنی؟ این قیام رجن هست برای شخص قائم دیگه برای شخص جالس که دیگه قیام رجنیست که ممکن این رو بگیم ولی برحال روی فکر کنید ببینید از جانب ندیسه میشه این همین چیزها یه تا مورد پیدا کنید بس دیگه کل, کلیتش خراب میشه و میگیم آمه شهید سانی این ورش هم بود چرا این ورش رو نگفتیم حالا ببینید باز موارد دیگه هم هست وحیه یعنی نیت همراه با تکبیر فیما آن چه که لوتبینا للمحتاد اون جایی که برای محتاط یعنی کسی که نماز احتیاط میخواند، بین شک بین سه و چهار الحاجت و الهه این تبین الحاجت و الهه یعنی یادش بیاد که چند خونده بوده و به احتیاط نیاز بوده چون همین شخص ممکنه بعدا یادش بیاد که بابا من نمازم چارکتی خونده بودم پس نماز احتیاطه خارج نماز میشه اون تکبیر و نیت دیگه تو نماز نیست اضافه نشد دیگه اونی چون خارج خ... لذا میگه لوتبینم الحاجته الهه آقای باشتن این زمیر الهه رو به چی زدی؟ الهه به احتیاط, به احتیاط. یعنی همون نماز احتیاط نه خود احتیاط ها به اون یرکت احتیاط منظوره بله آره آشکارا حاجتی که برداشت آره آشکار شود حاجت به اون احتیاطه منظور از نماز احتیاط نماز نمازه خب سه اوسلم الان نقص و شرع فی اخرى قبل فعل المنافی مطلقا اگر سلام نماز رو بده الا نقص یعنی نماز مغرب رو خونده سلام داده بعد پا شده نماز اشار رو شروع کرده خب هیچ فعل منافی هم انجام نداد یعنی بین نماز برنگشت اونور یا حرف نزد سلام رو داد وقتی سلام رو داد پا شد نماز عشا شروع, شروع, شروع کرد الله و اکبر نید تکبیر و اون رکعت اولشو را انجام میده در این صورت اگر بین دو نماز چه خوند چه اولی ناقصه بین دو نماز فعل منافی انجام نداده باشد اون وقت اون رکعت اول نماز بعدیش رو یادش اومد که اه من دو رکعت خونده بودم سه رکعتی رو یه رکعت چم خونده بودم اینو برای اون حساب میکنه اینو برای اون حساب میکنه عمید. یعنی رکت سومش در واقع نخونده بود دیگه همون رکت اول نماز دوم رو برای این عنوان رکت سوم حساب حالا آره دیگه سلام میده و کم نه دیگه اون بعد رو مثلا پنی رکت بخونه بگاه یه رکتش کنونه اون چهار رکت ها. نه تو یه رجت اول سلام میده، اون سلامش کجا می‌چسبونه؟ اینو به اون قبلیه. نماز اولش میشه یه دو رجتی، یه رجتی تمام. این فتحه رو الان که این فطر الان قائم نیست، این غیر مشهوره. به خاطر امیوم بالا گفتم، بنویسید طبق نظر مشهور، این موارد و غیر مشهور. تو این غیر مشهور؟ شاید دسانی کاش یه تزکر می‌دادی نمی‌گویی بنابر غیر مشهوره. حالا دوباره عبارت رو بخون. او سلمه حالا این سلمه رو دقت کنید این سلمه رو عطف کنیم بر فیماله و تبینه چرا؟ چون اینجا هم در واقع نیت و تکبیر اضافه شد دیگه روپوش اضافه نشد دیگه. چرا؟ چوستیش. چون رجعت سه گمه قبلیه هم روپو رو میخواست دیگه سجدت هم اضافه نشد پس فقط یه نیت و یه تجبیر اضافه شد لذا این میره تو همون هیمه ات تکبیر اگر بخواد دونه دونه بشمارید همه شد چرا سه میشه اما اگر میخواد کلی کلیش کنید مثلا دقیق تر تقسیم کنید آره این میشه قسم دومه شمارید دو مثال دومه شمارید دو او سلامه اتبع تبينا الا نقص یعنی روش بنویسید مثلا رکت دوم نماز مغرب سلام داد و شرعفی فی اخرا عجله داشته کاریام نکرده سریع پاشو نماز بعدی رو شروع کرده قبل فعل منافی قبل این که فعل منافی انجام بده نه پاشد نماز نمازشو خون این قبل ظرف برای اون شرع مطلققا رو گفتن این مطققا غیده برای خود منافیه یعنی منافی مطلقه ها چه عمدی و چه سری؟ خ خب روی این مورد هم بنویسید که البته این فتوا بله محجور بین ا ها و است یعنی از ها بهش عاییت نکردن به این فها آره دیگه محجور هست یعنی چنار گذاشتن این فتحه رو روایت داریم اگر پاورقی زبده رو نگاه کنید اونجا گفته گفته که روایتش از حضرت حجت علیه حسن هست ولی این روایت مرسده اولا ثانی هم از حابم این رو بهش توجه نکرد خیلی خوب. پس آقا جم موارد رو که داریم میشماریم یک نیت که گذشت دو نیت مع تکبیر که دو مثال داشت اینجوری تحصیل کنیم بهتره؟ باشه پس اینجوری تحصیل کنیم در واقع دو میشه هیه معد تکبیر مثال الف لوتوین علی المحتاج مثال بش سلم باشه این پس اینطور قیام ان جعله مطلقاً ركناً كما اطلقهو مورد بعدی این دیگه سه میشه یعنی این دیگه ادامه دو نیست این دیگه خودش سه قیام اطوارو نیت اول چند نیته و هي مع تکبیره بل قیام من اون علت سه و چهار گفتم علتش این بود که همه مواردو براتون به عنوان مثال میشورم دیگه ولی این فندیتر رو به قول شما علم میتونه قیام قیام رجن هست یا نه بله دقت کنید قیام رجن است البته در مورد قیام اختلافه بعضیا ها گفتن مطلقاً مطلقا رجنه یعنی ایستادن در نماز هر جاش هر کدوم از قیام ها میخواد باشه رجنه لذا فراموش کردی و نقصان نفس، ایجاد شد در صورت باطل نظر دوم اینه که نه قیام متصله به رو روچنه اینم یه نظر نظرات دیگه هم هست حالا شهید ثانی میگه اگر قیام مطلق رو شما روچنه بدانید خیلی جه میشه ما قیام اضافی داریم ولی نماز باطل نمیشه میشه میتونید مثال بزنید طرف ایستاده بعد یادش مند که اه نباید هرم میستادن. ما پا شده در حال چه تشهد یادش رفته یادش میاد، اه تشهد نکنن زود میشینه تشهد رو میپونه یه قیام بیجا مشکلی نداره فقط این مثال یه گیر داره یه مشکل داره اون گیر و مشکلش اینه که قیام تحقه ممکنه با بگیم که آخا این قیام روچ نیست که قیام متصله به رکو روچ نست یا نظرات دیگر در قیام اونو بگیم لذا شهیده سان این رو چون میدونه خودش تذکر میده میگه ولی قیام یعنی مورد بدی مثال بدی اضافه شدن قیام است. به عنوان اضافه شدن روجن البته انجلناهو مطلقن روچنن اگر قیام را مطلقا روچن بدانیم این مطلقا در قباله نیچه قیام را متصله به رکوش روچن بدانیم یا نظرات دیگر چه مثلا توش بر روچنی هست یا نه و الان میرسون آن هست. حالا شهید سانی می... یه تیکم اینجا میدازم بگی کما اطلقه ها همونطور چه خود شهید, شهید اول مطلق اوورد این اطلقه ها به معنی گفتن نیستان یعنی مطلق آوردنه اطلاق میدونی دیگه اطلقه دومنی در این کتابات داریم یه وقت از میگیم زیدون اطلقه چه فلانی آدم بدیه یعنی اطلقه یعنی اطلاق کردی یعنی گفت بعضی وقت هم این اطلقه یعنی مطلق رو برد قید نزد حالا اینجا یعنی قید نزد کجا قید نزد میتونید پیدایش کنید آه. همون جا که روچنا رو شمرد دیگه صفقه گفت ارکان خمسه و هی نیت و قیام شهید اول اونجا نگفت قیام متصله به رکوب نگفت پس خودش قیام مطلق رو تو این کتاب روچ رو میدانه و ما هم میدونیم قیام خیلی وقتا صحبا رخ میده فراموش شده اشتباه پا میشه ولی ایرادی نداره این هم از مورد سوم یا چهارون تقسیم چه داشتیم بعدی و ا خب اینم مورد بعد میشه دیگه دیگه تقسیمی توی اونها نیست خودش باز ادامه قبلیه و رکو آقا منو نگاه این دیگه سنگینه رکو اضافه بشه نماز باطل نشه ممکنه اگر رکو اضافه میشه نماز باطل پس چه روت نیتی شما تو روتون پیش اومده براتون چه این دیگه تو نه نه تو نماز جماعت زیاد هم پیش میان شما تو این شلوغی نماز جماعت یه دفعه اصطلاعی میشد امام جماعت رفت روکو میرید روکو بعد اون که امام داره هنوز سوره رو میخونه برمیگردید وقتی امام رفت روکو دوباره میدید روکو چند تا روکو شد دوتون روکو اضافه شد دیگه ولی باتر نیست هیچ مشکلی هم نداره به هر حال صحبت ما سر بود که روچنی اضافه شد و باطل نمیشه. بعد دیگه تو نماز جماعت گفتن تبعیت کن. اگه تبعیت نمون میگفتن ها رو خود دیگه اداه بده. ولی چون تبعیت اینجا لازم سجده هم میتونم. این رو برای سجده میتونم بگی. سجده متواعید تو تا سجده شد دیگه. دوتا تا سجده تا سخت پیش میاد. حالا حالا. تکبیر رو اگه قبل از امام بگی اون دیگه نمازت فرادا شد دیگه. اون نمازت فرادا شد نمیتونه اونو شکستن نماز رو اجازه نمیدن نه. اون دیگه فرادا شد حالا یا قصد مستحبی میکنی سری میکنی و میرسونی خودتو یا دیگه نماز خودتو میکنی دیگه. یا توفیل جماعت نداشت خب و رکوع فیما لو سبقه بهل معموم و امام مهو سحور رکوع درانجای که سبقه به اون رکوع معموم بهی یعنی به همون رکوع معموم ثابت شد امامش را. البته صحبا. اگر صحبا نباشه عمدن زودتر از امام به رکوع برید نمازتون چی میشه؟ فرادا میشه. فرادا میشه. حواظتون باطل نمیشه. یعنی جماعت رو از دست دادید دیگه. این نمیخواد فرادا بشه. این میخواد همون جماعتو رو ادامه بده. برمیگرده به خاطر همین برمیگرده. به الال برمیگرده همین که برگشت خب یه روکو انجام شد قشن بعدش دوباره با امام روکو میده شد دوتا ای را دیناده و سجود فیما لوزاده این سجود هم طبق تقسیم شما شد پنجمی پس آقا شد دوباره بگیم اولیش نیت دومی نیت و تکبیره چه خودش دوتا مثال داشت سه قیام چهارمی روکو اینم پنجامیش سجود فیما لواذاه واحدتا ان جعلنا ركن مصمماو این دیگه باز مبنایی اگر رکن را سجده مسمای سجده بدانید که شهید ثانی شهید اول تو ذکر اینو گفته بود مسمای سجده را رکن بدانید خب سجده خیلی وقتا اضافه میشه پیش میاد دیگه مثلا یه موردش همین تو مطابعت از امام شما اشتباه هم رفتی سجده با دوید امام هنوز سجده نیست که بر میگردید دوباره با امام میرید خب در این صورت این سجده اضافه شد حالا دو تا سجده اضافه نشد که یه سجده لذا شهید سانی میگه اگر این جنب روکن را مسمای سجده اگر مسمای سجده بگیده هنو سجده حاصل شد زیادت روکن حاصل شد ولی نماز باطل نیست مثال دیگر هم دیگرم می مثلا شخصی سهواً سه تا سجده انجام داد. میشه مثال؟ دو سجده اش که هیچ اون سجده سومش مسمای رکن هست دیگه. پس باید نماز باطل بشه در حالی که علما میگم اون یه دونه سجده صحوی اضافه شد، ایرادی نداره. ها، دو تا سجده اضافه بشه این دیگه باطل. دو تا سجده، اون دیگه دیگه نمیشه قاریش. با همین دیگه بله. دو سجده با هم طبق نظر مشهور دو سجده با هم که روچنه اگر شخصی اشتباه دو تا سجده اضافه بر اون دو سجده است انجام داد نماز باطله تو نماز روحت اگه به خاطر مطابعت باشه ایراد نداره مثل روپور دیگه خواهر چه او هست هفته صفیقاتش در روز نیست خود صفیقات رو اکتوی جواب شایده سنیم همیدون میگفتیم از این مسماع استفاده میکرد اگه یک سجده وجود بیاره خب مسماع را وجود برده مسماع را برده یک رو کلوم زیادتر کرده یک رو کلوم زیادتر کرده باز نمازش باطل این استعداد رو بیچنه با در اگر همینجا استثنان بیدن از این استعداد که بایده چیده اخیلتش ای... اینه اونجا فتفای مشهور همینه دیگه فتفای علما اینه که یک سجده اضافی صحون ایرادی برای نماز ایجاد نمیکنه. وقه ها این فتوای رو دادن حالا به شهید اول اعتراض میکنید میگه آقا شهید اول شما اعتراض ندارید اون مواردی رو داره میشونه دیگه میگه ما روج اضافه شد اگر البته یک سجده رو روجش بدانیم مسمى سجده با اون حرف قبلش در مشکلی نداره شما نگاه کن تو اون حرف تعریف در مقام پاسخ به شهید اول اینو گفت گفت اگر شما مسمى سجده را روج بدانید خروج از محل بس خروج از محله بس. اگر روچن بدانید باید باطل می شود باید هم باطل می شود. خب آخه فوقه خب همین دیگه آخه فوقه ها قائل به این نیستن چه اگر فوقه ها قائل به این بودن چه مسمای سجده روچنه است این فتواشون اشکال بر خود فوقه ها می درسته خب شد فوقه ها بودن سجود فیما نوزا در فیما نوزا در این ان ركش اني اگه من این روش رو قرار بدیم اینجا یه رو قرار اضافه و بالا میتونیم اضافه کنیم ببین می اینجوری میگه میگه اگر شما تو سجده نظرتون نظر مشهور نبود که دوتا سجده با هم روچید نظرتون این شد که نماز همه سجده روچید مثل شهر دورد در ذکر که اون تو پاسخ اون اشکال گفته بود اگر اینو قبول کنید خب شما میاد یه سجده سحوی در نماز انجام میدید اضافه در حال که از این مر خود همین فوقه ها فتواشون اینه که این سجده اضافه باطل نمید پس شد یه مورد از اون جاهایی که روچ اضافه شد ولی باطل نشدی منافق با اون حرف های دیروز نداره تو اون حرف دیروز به شهید اول گفتیم اگر شما مسمای سجده را روچ بدانید اولا خروج از بحثه ثانیه لازمش این میشه که با اضافه شدن یه سجده هم نماز باطل شده سهواً در را که هیچ نگفته پس این سه تا با هم منافات نداره این سه تا با هم منافات اتفاقا در راستای حرف شهید ثانی حرف دیروز شهید سانی مشکل نداره حالا باز و و سجود فی ما لواذا واحده این سهواً یا امدن یا مطلقاً سهواً و دیگه مشخص ولی چون خیلی مشخصه دیگه شهید ثانی گفت که شما بلدی دیگه ان جعلنا ركن مصمما اگر این ان جعلنا ركن مصمما نمیگفت اینجا عبارت اراده پیدا می جت مگر نمیگفت نه اگر نمیگفت اون وقت دو تا سجده رو می دانستیم خب معلومه دیگه یکیش روج نیست که اضافه شدنش معلومه باطل نمی کنه صرفا اضافه بشه باطل نمون چون الان ما داریم میگیم روچ اضافه بشه باطل نمی, بشه باطل نمی کند پس باید قیدو میزد. باید یه دورش چک کرد. و زیادت جملت آقای محمد این مولد چند چندم میشه؟ ششم میشه. این ششم میشه. و زیادت جملته. ارکانه این مورد ششم اضافه شدن یه سری ارکانه نه یه دونه نه دوتا کلی ارکان غیر نیت و تحریمته البته این جملت الارکان که گفتیم نیت و تکمیرت و توش نیست دنبال نیت و تکمیرت و توش نگردید بقیه رجنا رکوع و سجده و اینها دیگه حتما فی ما زاده. آیه محمدی پس حالا که اونجا گفتیم بذار اینجا هم پس دقت کنیم ببینیم الان این زیادت جملت الارکان چه شد مورد ششم. دوتا مثال داره اون هش رو که گفته بودم اونم شاید مثال دومش باشه فیما ازا زاده رک اتن آخر از سلاته و جلسه به قدر واجب تشهد او اتم حالا آره دیگه اون اتم اتفه بر زاده هستش پس اینم شد مورد ششم که دوتا مثال داره حالا الان توضیح میدم خیلی با این تذکر آی محمد این تقسیمات ما قشنگتر و فنیتر و علمیتر شد آقا یه سری ارکان اضافه میشه نه یه دونه ولی باز نماز هیچ طوریش نمیشه روی این حساب شهید اول زیادت و رو نگفت که سهونم باطل کنه خب فیما اولیش ازازاد رکعتن آخر از سلاته و قدر جلسه به قدر واجب تشهد دقت کنید همین اولش بذارید بگم این از اون موارد است که غیر مشهوره یعنی تو فتفه های الان دنبال این فتوا ها نگردید غیر مشهور. غیر مشهور از کجا پیدا شد یه روایت داریم که فقه ها به اون عمل نکردن اون است که یه رکت در آخر نماز اضافه میکنه اون غیر مشهور قبلی چم خونده بود اینجا زیاد خونده مثلا نماز مغرب رو میخونده نماز مغرب سه رکته. این رکت سه خون رو که خوند، این رو که انجام داد، بعد نشست. جلسطم استراحه. این خب. اینو نشست. این الان حواسش نیست که رکت سه ومه و باید تمام کنه. نشست. بعد حالا شانسی تصادفه نشستنش یه در طول کشد. مثلا یه سی ثانیه نشست. سی چه سانیه نشست. بعد پا شد، و رکت چهارم رو اشتباهن به خیال این که رکت ثومه خوند در سومو خونده بود و بعد نشست و سلام و اطمام نماز تشهاد و سلام اتمام. خب الان فتحاشو بگید این چیه؟ این نمازش باطله دیگه چون به جای سه رکعتی چهار رکت خونده درسته؟ اگر بداند که اینجوریه باطله اما اگر بداند که این یه اضافه کرد اون یه روایت غیر مشهور اینا میگه میگه نگاه کن ببین بعد از اون نمازت که در واقع همونجا تمام شده بود اگر اونجایی که باید میشستی تشهد و سلام میدادی نمازت تمام میگه نشستنت به اندازه همون تشهد و سلام طول کشیده نمازت درسته تشهد و سلام نداده ها میگه ببین حالا به همون مقدار چه و سلام مثلا میگه آره من هم سی 30 سانیه تشهد سلام میگن دیگه الله الله الله الله. اینا رو میگم سی سانیه طول میکشه میگه خب نشستیم میگه آره اتفاقا به یه دلیلی سی سانیه نشستم میگم نمازت درسته چهار رکت خوند ولی نمازش درسته خب حالا شما به من بگید این نمازش که درسته نمازش باید چند رکت می بود در حال چه این چهار رکت خونده خب ایرابی نداره درسته بر این فرض درسته چند تا روچ اضافه شد ایچی دیگه پا شد قیام متصل به رکو یا قیام مطلق یه قیام به هر حال روچ یه روکو دوتار سجده کلی ارکان اضافه شد پس زیادته جملت تل البته غیر تحریم و غیر میگن این روحت داره آره روایتش حالا میگم کجا ها این فتفا نیست دارم. فیم آیزا زاده رکعتن آخر سلاته اینو آخر بخونید وقت جلسه به قدر واجب تشهد به اندازه اون تشهد واجبش نشسته حالا بویا فقط تبیرم به تشهد هست حالا من الان یادم نیست سلامش هم هست یا نه او آخرین مورد که این عطف برای همون جلسه هست یعنی مثال دوم برای این ششمین صورت میشه اتمل مسافر و ناسی هن. این دیگه آسونه مسافر باید نماز دو دو رکت میخون دیگه پیش میاد برای خود ما هم پیش اومده باید دو رکت میخوندیم یادمونه چهار رکت کنیم اگر در وقت یاد افت... یادت افتاد که اه بابا من تو وقت باشه خب بعد یاد باید دو دوره اعادت نبید دو رکتی. اما اگر وقت خارج شود شبش شد شبش را افتاد فردا شده افتاد که من آقا شکسته‌س نه نخوندیم اصلا طرف مسافرت میره که نمازش شکسته بشه چیکیف بکنه ما استفاده نکردیم میگه اونجا دیگه نیاز نیست بله خب آقا جان اون نماز ظهر چهار رکتی رو که خوندی باید چند رکعت می‌خوندی دو رکت چهار رکت خوندی چند تا ركعه اضافه شد دو تا رکو، دو تا سجده دو تا دیام متصل به رکو شش تا رکعه اضافه شد ولی اشکالی نداره پس اعتم بالمسافر اعتم بر اون زاده حتما المصافران ناسیان ها نعمدم الان خرج الوقتو در این صورت فضیادتو باید بگیم مخفورتو آره این فتوه هستی البته خب باز اون طور ریزکاری ها شاید فوقه اختلاف داشته باشه تمام شد و علم این یه بحث دیگریست دونه دونه گفتم بحث ارکان رو فعلا داریم دونه دونه ارکان رو بحث میکنم چه آقا حالا نیت رجن هست قیام رجنه تکبیرته هران روشه کجاش روش الان قیام کدومش به علاوه رکوع نه قیام متصل به رکوع خود قیام قرنه اینا رو بحث میکنیم اون 5 تا رو بعد بریم صلوات بفرستیم اول الله مسعود خدمت هزار کار داره این اینجاها این بحثا هم هزار کار داره گفته بودم پیش مطالعه هم حتما داشته باشین انشالله این نشسته نه قبل اینکه تو چهارم بشه دیگه بله دیگه قبل از عمره چت اضافی به اندازه واجب تشهد نشسته بود. تازه میگه واجب تشهد. پس گویا اون سلام نیست من حالا روایت رو 제대로 ندیدم این دور ندیدم. روایت رو ببینیم. ببینیم تشهد و سلام هست یا فقط تشهد؟ تا زانم واجب تشهد یعنی اون الحمدلله ش هم نمیخواد. اصلا اخیری سلام اما سلام و صفا و سلام و اخار و دیگره، فقط تشهد میشه. شما چند سر رحمت الله و چی چیزی؟ تشهد هم بود که باشه به هر حال اون خودش یه سه ثانیه وقت میخواد دیگه این میگه به اندازه واجب تشهد یعنی فقط همین مقدار اشهد و ان لا اله الا الله و احته و لا و اشهد ان محمد حمد عبده و رسوله اللهم همین فقط همین مقدار این مقدار اگه نشسته بودی کافیه نمازت درسته هم اگر هاشی زوب در رو نگاه کنید روایتشو او اونجا خدا نگه داده خدا حافظ